مجموعه ورام جلد یک صفحه صد و سی و چهار از پیغمبر اسلام لو کنتم تو به خیر الاخره و شرها کما تو به دنیا لآسرتم طلب الاخره دقت بفرمایید لو کنتم تو قنونه به خیر الاخره و شرها، ها اگه شما باور کرده باشید یقین داشته باشید خیر آخرت را و شر آخرت را کما تو قنونه به دنیا همه مقداری که تو دنیا باور دارید مثلا الان شما چرا دست به آتش نمیزنید چون یقین دارید شما رو ازیت میکنه چرا یه لیوان سم باشه نمیخورید تو این دنیا میگید من رو عذیت میکنه پس اونی که اما یه لیوان نوش دارو باشه میخورید اون ایمانی که دارید این مفید است میگیرید اون مزرست دور میریزید اگر کسالتی داشته باشید یه داروی تلخ بدمزه بسیار اتفاقا مثلا گزنده زبان و دعان و انجره نمیخورید چون خیر دروه. یقین دارید خیر داره تلخیش رو تحمل میکنید یقین دارید اون غذای خوشمزه شر داره شیرینیشو کنار میزنید میگید نمیخوام پیغمبر میگه اگه همین مقدار نسبت به آخرت باور داشتید لآثرتم شما آخرت رو میگرفتید دنیا رو رها میکردید و اگه میدونستید که راجب آخرت چه خبره حساب دیگری میشد